صحیفه سجادیه کتاب بسیار عجیبیه قرآن کتاب خاتمه در میان کتب الهی ولی صحیفه سجادیه کلاس دوم دینداری رو مطرح میکنه یه اگر خدا بخواد عبارت مرحوم مزلسی بزرگ مزلسی پدر آشق محمد تقیه. مجلسی صاحب بهار پسر ایشون هست یه ای کتابی داره به نام روزت المتقی شرح منلای احضاره الفقیه شیخ صدوقه خب ایشون عالم اول زمان خودش بوده اون زمان مرکز تشعی و حوزه های علمی شیعی اسفحان بوده ایشون هم اونجا تشریف تاشتن و الله عزمان زمانش بوده. مدرک ایشون و سند ایشون به صحیفه سجادی خیلی جذابه. یه روز انشاءالله متن کتاب روزتالمتقین رو میارم میخونیم. خیلی عجیبه. وقتی میگه من در اثر ریاضات و های زیاد دیدم که روش نمیکنم یه حدی روش کردم اما روشتم متوقفه خیلی میگه گریه کردم عبارتش خیلی شیرینه الان از رو باید خوند خلاصه عرض میکنم یه خیلی گریه و انابه و توسل به هزرات به دلم افتاد توسل پیدا کنم به پیغمبر خدا که راهی برام باز کنه توسل پیدا کنم بین نوم و یغزه بین خواب و بیداری حضرت رو مشاهده کردم سنم هم سن چند سالی نگذشته بود از بلوغم چی اینسان های خیلی بوده آقا یعنی در سنین اول جوانیش بوده حضرت رو در بین خواب و بیداری دیدم گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم که اینجوری دستم بسته شده توقف پیدا کردم چه سعی میکنم و شریعت رو دنبال میکنم عمل میکنم اینها دستم به جایی رسه. حضرت اونجا من رو دلداری دادن مطالبی رو پرمایش کردن و من آرام شدم یه سآلی ازش کردم وقتی دیدم میخواد از من مفارغت کنه و خدافزی کنه عرض کردم آجان من همیشه نمیتونم شما رو ببینم مثل که گاه و بگاه خدمت حضرت میرسیده همیشه نمیتونم شما شما یه متنی کتابی نوشته یه چیزی رو معرفی کنیم به من که من همیشه ازش استفاده کنم و مسیر من رو در رشد و کمال و تقربه به خدای متعال روشن کنه حضرت فرمودن برو پیش فلانی یکی از علمای اصفهان. او یه کتابی داره دستش هست برو معرفی میکنه به اون کتاب کتاب رشد توست بالاخره با کنکهاش این, این سمت اون سمت چند نفره میره به اون اسم پیدا میکنه و اینا درویشن سوپی هستن متعرضی میشه آدرس این نیست تا خود اون شخص در یه جایی اشاره میکنه و مرمون مجلسیری میخواد میگه اون چیزی که شما در خواب و بیداری دیدی پیش منه و کتابی رو بیش میده وقتی باز میکنیم اونه صحیفه سجادی است و میگه من 100 هزار نفر از بزرگان اون زمان رو با این کتاب تونستم به مسیر بیارن خیلی تعداد زیادی اون زمان چهار مثلا تقدید سی ساد چند سال پیش ولی چیزی هم میگه میگه از این کتاب نسخه های زیادی باب شد میدونید که از زمان مجلسی اول صحیفه تو دست عموم افتاد قبل از اون صحیفه خصوصی بود دست شهید سانی شهید اول شیخ بهایی این ها میشرخید فیض کاشانی خصوصی ها میدونستن این مطلو و استفاده میکرد از اون به بعد دیگه عمومی شد همون مجلسی میگه این تعداد رشد پیدا کردن به واسطه این کتاب ولی من یه نفر رو بین اینها پیدا نکردم اون چیه که من یافته بودم بهش بگم اون اصل اون اصل اصیلی که امثال علامه امثال آیت الله خوشوقت پیدا کرده بودند امثال مرحوم قاضی رحمت الله علیه مولا سنقلی عمیدانی پیدا کرده بودن و ازش استفاده می کردن. سکوتشون کلامشون عملشون همه ذکر بود و در حال ذوق بودن میگه من یه نفر رو در بین اینا پیدا نکردم اون رو اون یافته اصلیم رو بهشون منتقل کنن معلوم اون یه گوهر خاصیه در هر صورت سایفی کتابی است قابل استفاده است